فصل عیسی این دستورات را به دوازده شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد، تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و معزه نماید. وقتی یهیا در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید، آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما؟ در انتظار شخص دیگری باشیم عیسی در جواب گفت بروید و آنچه را که میبینید و میشنوید به یحیا بگویید کوران بینای خود را باز مییابند لنگان به راه مییفتند و جزامیان پاک میگردند کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان بشارت داده می شود. خوشا به حال کسی که در مرد من شک نکند. در حالی که شاگردان یحیا از آنجا می عیسی ایسا درباره یحیا شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت، برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نیی که از باد می لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که ملبس به لباسهای ابریشم و فاخر بود، مسلما جای چنین افرادی در کاخهای سلطنتی است؟ پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری. به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است که کتاب مقدس درباره وی میفرماید این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یهیا به دنیا نیامده است. با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است از زمان یهیای تعمید تعمیددهنده تا به امروز پادشاهی خدا مرد حملات سخت قرار گرفته است و جباران جب برای دست یافتن به آن کوشش مینمایند همه پیامبران و تورا تا ظهور یحیا درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس معوده است. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به اختیگر میگویند ما برای شما نیزدیم، نرخصیدید. نوهگری کردیم، گریه نکردید. وقتی یحیی آمد، نه میخورد و نه مینوشید، ولی همه میگفتند او دیو دارد. وقتی پسر انسان آمد که میخورد و مینوشد مردم میگویند نگاه کنید او یک آدم پرخور و میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت میرسد. آنگاه صح درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر موجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودن توبیخ نموده گفت وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای بید سیدا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد مدتها پیش از این پلاس پوش و خاک نشین توبه می کردن. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما و اما تو ای کفرناهوم که سر به آسمان کشیده ای به دوزخ سرنگون خواهی شد زیرا اگر موجزاتی که در تو انجام شد در صد دوم انجام می شد آن شهر تا به امروز باقی می مان. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صد دوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود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 و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد. و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند ای تمامی زحمت کشان و گرامبارا نزد من میاد و من به شما آرامی خواهم داد یوق مرا به گردن گیری. و از من تعلیم یابی زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت زیرا یوغ من آسان و بار من سبکه.